این مشکل بعدی اونجا اومده که صدای علما با موسیقی یک مشکل مصیبتی هست حالا عالمی گفت فوت بکنه دیگه صداش میگیرن ضبط میکنه حالا یک آهنگی هم داخلش میذاره آهنگی غم علی فوت کردی غم. آهنگ غمش با درس خران میکنه از الله و رسول میگه از آخرت میگه هم با با موسیقی الله هم تو مشاهده میکنی که هرچم علم بیشتر باشه باید موسیقیش غم ناختر باشه خیلی میبینی از علما حتی اونها که زنده از زنده‌ها رو این کارو میکنن که در خود سخن او دارن یک موسیقی رو میزارند دست سخرانه میکنه با دادو فکر میکنه اینجا این کلام بهتر بر دل تاثیر میگذارند یا اشعار میخونن دارن ذکر میکنن از الله رب العالمین تعریف میکنن ذات باری تعالی رو یا نبی مکرم اسلام را اما اون آلوده موسیقی میکنن مرد مؤمن مگر تو الله رو با موسیقی زیبا بکنی یا میخواد تعریف نبی رو با موسیقی زیبا کنید نه اینجوری نیست اونها با موسیقی زیبا نمیشن برک اعمال ما دار سیاه میشه از این عمل باید پرهیز کرد حالا یک آیه بخونم و یک به اصطلاح حدیثی میخونم در این مورد اولی آیه هست که خلقت اعمال صالحه و آخر سیئه بعضی هستن اعمال صالح و سیعه را با هم قاطی میکنن. داره کار خوب ایداری کار خوب انجام میدی، سخرانی پخش میکنی برا اسرائیل جامعه کار میکنی، کار فرهنگی میکنی، اون عمل صالح تو آلوده نکن با موسیقی وقتی با موسیقی آلوده کردی برعکس گاهبط میرسید هرکسی کسداری این گوش میکنه، بخشی از این گناها به جنووالی می رسند که چنین کاری رو انجام دادید پس هرگز ما به هدف نرسیدیم. بلکه برعکس حرکت معکوس شروع شده دارین این بیگناه رسیم پس در اینها نزارید موسیقی ها رو بذاریم صوت خودش کافیه. اگر صوت تأثیر نداشته باشه با موسیقی تأثیری هم پیدا نمیکنه. خود کلام کافیه. کلام الله رب بول آلمی کافیه. این حدیث دارین در مصنوع امام شافعی رحمه الله اونجا فرمودند که دمو صدقه هست که ان الله لا یا الا طیب الله ربوعاية فقط چیز پاکو قبول میکنند چیز پاک قبول میکنند و فقط چیز پاک به طرف آسمان ها میروند چیز کسیف به طرف آسمان ها نمیره اونها بر علی خودش میمونند و در همون حدیث ادامه که میفرمایند که وقتی چیز پاک لایک الا طیب و طیب را قبول میکنند چیز پاک و پاک رو را میپذیرند فهمیدن اینها مین بالا تا اینکه در کف الله ربوعاالله در دردست اعمال واریک الله ربوعاالله قرار میگیرن علاوه دستها ساعه که میلیض بشانی به صورتی که مناسب شان باری تعالی هستن اما در حدیث اینجوری اومده که هر ما ایمان داری بر همین حدیث میره اونجا قرار میگیره اگر اگر این عمل طیب نبود این عمل کثیف بود بالا نمیره این وین وزر قرار میگیرن مصیبت قرار میگیرن و بال جان انسان میشن پس اینجا دیگه این موازی باشی در سخنرانی ها در سروده در تعریف و تمجیدها. در ماده‌ی های که از الله رب الله تعریف، تعریف الله ربوبالن، تعریف رسول الله بعد موسیقی داخلش نظر، خود دا همون کافی است که عمل خود را غاتی نکنید که بالا نمیرن و باز هم دیگه مصیبت جان می‌گیرن.